پایه‌ایه دا بحث حجیت زوائد شد، مسائل دیگه به تکرار نداره. نتیجه‌رسین این که واجبه جواهر قرآن در بخش تفخص و تحقیق جدیدی باید بشه. و نقطه دیگری که در اینجا گفته باشه باید قبول بکنیم انصافا مراجعات ما در فهر قرآن خیلی زیاد نیست که در فرقه در فرقه سنتی بقدار بیشتر مراجعه هست و اونها هم به نفذ تحلیلی و دقیق مراجعه نکردن انصافا یه نفسی که باید کبران دست آخری که راجع به جیت زواهر کتاب در فقه این از که در مجموعه فقه در مجموعه فقه اسلامی چه سنی چه شیعه چه سهی چه سهی به ادهی از شده که سابقا نهاز که قسمتی از این تمسخ ها روشن نیست و این راهی رو که آدم اخباری ها پیش ما بگیم کلا اطلاعاتی یعنی زوائد کتاب رو از حجی حساب بکنیم این هم راه درستی نیست یعنی اینکه این راه رو پیوسته انجام دهیم؟ به خاطر اینکه مثلا بگیم بعضی از استدلالات و استدلالات تعریف شده درست نیست این راه هم راه صحیحی نیست نظر ما که بحثی هم به علمی خودش رو اضافه کنه و آیات رو بتونیم چه طور همون معنی که دارن استدلال صحیح بکنیم نه نفی مطلح بکنیم نه استظهار بیش از هر هر دو طرف افراد و تحلیق سابه در, در مجموعه آیاتی که ما الان در کتب فر میبینیم بود کم اصبح شده میتوان اینجور گفت یه در آیات اصلا راجع به امور تکیبینی هستم هیچ ناظره به تشریع نیستم طبعا چون تشریع در این شریعت بر اساس تکیبینه زیر بنایه تکریه تشریع قرار میده اما نازره به مقام تشریع نیست مثل اما رفا که به زندان در مثلا این آیه نازره این نیست مثلا ارس زنان مرد و یکی باشه ازا زرم نازره یا مثلا ناظر باشه به این که باید گیه کافر و مسلمان یکی باشه ازا زرم بخره نه این طرف رو میشه بشه از سرکت در قرآن در احکام و نه اون طرف دیگه این یک ای از آیات. که به ذهن میاد جنبه های تکلیمی یک قسمت دیگر از آلیات بخش دومش بیشتر جنبه های ملاکات دارن این هم جنبه ملاکات مثل جنبه تکلیمی فهم و که جنبه ملاکات بیشتر زیر و اساس تکلیمی به لحاظ تشریعه فر بین ملاکات با تکلیم در اصطلاح ما اگر تکلیم دیدم نفس لحاظ بشه خوب میشه هم تکلیمی اگر تکلیم به لحاظ زیر بنا قرار داده بشه اون میشه امر به ایسا ملاک با این که امر تکلیمی هم هست مثل فرص مثلا ارجاع احوامون ارنسا به ما الله و بعضه هم علا برد این فضلالله و بعضه هم علا یک نقطه ملاکی یک نقطه تکلیمی نیست که ملاک به این مرد قرار گرفته و جماعی دیگه که آیات به این مناسب هست مثلا یو هفت تواویم اینالله یوحه بود تواویم یوحه بود متطهیری مثلا به این یوحه بود متطهیری اختضا میکنه که هر نوع تحارتی مستحب باشه منبای مثلا اگر در روز جمعه مثلا آفیده نکرد فیموم بکنه همین فیموم مستحب در اینالله یوحه بود تواویم خب این رو نمیشه اثبات کرد اصباتی این که این تیموم فضیلت همون به اصطحارت مایی رو داره دلیل میخواد بله اگر جایی وضو نتونست بگیره مثلا تهم این خواهر قبوله اما در غیر این صورت این طور یعنی مسئله تن میکنه. میکنه علایهانه ما اگر ملاکات هم در آیات مبارک بیام ملاکات یا امر تکمینی از اونها استفاده تشریع نمیتونی بکنیم یعنی به عبارت از این اخرا ملاقا و مورد تکیمی به منزله احکام عقلی هست حدشون هم حد در احکام عقلی هست خب عقل رسانی مثلا رو درد بکنید. با ادراک عقلی در بحث ملازه متعرض شدیم با ادراک عقلی نمیتونیم ما جهد و استفاده بکنیم لذا تمسا که بگیم سنخ آیات به این آیات مبارکه یه آیه ورکه با نذری نهار لیلا النهار خیر فلمن اراد ان یذکر و اراد شکررا خب بعضیا بین آیه استپلاس برای استپلاس خوبه خداوند دوتایی میفرما شب و روز رو یکی پشت دیگری شب پشت روز لمن اراد ان یذکر کسی میخواهد تضرع بدارو و بخواد شکر توفیق بذاره مثلا به این آیه تمسک شده تا که اگر نمازی که در مافله النهار فوت شد در شب بخونیم قضاج میکنیم در شب این اگر از روایات یا خوبه مثل مثلا ارهادن یه ذکر شب و روز پشت سر همه خلیفه یه دیگر نایمنا به هم ولی جهر نیل و نهار خیلی توی که ما توی بعض روایات نتمثل شده بشه بعد اگر بخواییم با مثال یک دعایی وارد شده که در شب وقت خواب مثلا بخونید یا در شب دو ساعت بعد از دماغذر شاب بخونید کسی این دعا رو نخوند بگیم از این آیه عماره. که تمثلی که مستحب بس تو قضا بکنه حوالا ری و نهار <تصفيق> اینه این امر تکلیمی امر نیست اگر بر فرزن در یک موردی قضا نافل آمد این رو باز در همون تحبود قبول بکنیم تأمین بگیم هر کاری که در ربایات آمده فسن قصر جمعه در روز این در روز یه همه مستهده بگیم شب شمبرشد همینطور بگیم داری لیل و نهار شلطه شب در روز جانشین هم دیگه هستن کاری ماشت. که به عنوان شب آمده بیاد در روز خدا شده کاری که به عنوان روز آمده بیاد به ات... اینطور آیات همچین اطلاقی ندارن یعنی برقرد هم اگر در قضا نافله همه من علیه مسلم بین آیت هم بیشتر زالم نه که باشه. ما یه قاعده کلی در بیارنیم. هر دلیلی که در هر موقع آمد که در نهار باشه در شر هم که باشه همون حکم داره به خاطر این آیه انصافاً هست تمثب به اینجور آیات برای اینجور احنا خالی از اشتار و شبه نید قسم سبب آیاتیست که به ذهن ما میراد شعاری داره یعنی چاشروهای کلی رو برم میکنه به ذهن ما همین آیات هم قابل تمثب نیستن در چه مثل همین آیه مبارکه که از تو در داره از علیکم خور محلیه که یا خور محلیه کمالخبار است خب به این کردن هر چی که خبیص باشه به اطلاق آیه حرامه حتی مثلا این با مثلا آبدهانش در بیا بیاره در چیز بر بخوره چون خبیصه آبدهان این هم حرام است کردن به اطلاق آیه این توضیح دادیم یا حرم و و در یک مورد در آن آمده بیشتر جمعه شعاربونه داره جنبه تشریع نیست ولو دفت تحریم توش کار بوده شده چون این آیه اون برای که در کلامی سوی با یهودی‌هاست، هاست هم نبی الامی الادی یه جدونمون مکتوباً این درمون این اگر اونسا به پیغمبر در تورات آمده این بیشتر جنبه ترسیم شهره کلی داره این تو مقام تشکیه اصلا نیست یوهلو یهند الله یوهلو لهم از و یوهرمو علیه اون خوارس باید همه همه همه کس و اون اقلال اللفی کار در این و زنجیه های سنگینی بقدر بکنید این آیه بیشتر جنبه شعاربونه داره اصولا معنا در ذهب اصلاح اطلاق جهل تشتیق باشه این یا حضر معلقه ما به ذهن ما میاد که این بیانه که پیدا که خواهد آمد در این شریعت مقدسه خواهز حرام خواهد شد و این وقتی هم ارز کردم در قرآن کلن دوبار مصرح شد استعمال شده در کل قرآن یک جا اینجا به کار برده شده یک جا درباره عمل قوم لوت اخرجم و قریت علیت ایکان از تعمال خبارست این درباره قومنون این اشکال استاد در درس ما ازشون شید که چون میفهمنن که ممکن است ما در خبارست اعمال زشت باشه نه چیزهایی که نفس اینو رو عبور. و تنسیت هم به اون آیه می کردن لیکن انصافش اینه که خبارست مطلبه چرا مقایده شکنیم به اعمال زشت یا به چیزهایی که پس بگیم کاره مقدسی که از اوصافی رو که رسول الله در تورات خبر دادن اینه که پیغمبر اکرم مطلق خباعث خباعث افلاقی، خباعث اعمالی، خباعث خارجی مطلق خباعث رو برای مسمون ها در آینده حرام خواهد کرد این مثل اوهلت لفن بقیمت انعام اللا ما یحلا علیکم اللا ما یحلا بعد برخواهد آمد در تورات هم اونطوره لذا نیمیتونی به اطلاق یا حرم و علیه امال خبارست البته شده هم سنیه ها در فقه اهل سنت بگیدم که دیمه فقه اهل سنت عباراتشون مختلفه در من در جازم برگوانیت نصر دادشوی گفته مثلا مراد از خبارست تستردار هون نفوس کل ما تستردار و نفوس این حرام بخاطر آگی مثل چه محصوص که اینجور چیزها و بقیه چیزهای پریدی هایی که در من خیلی کلمات اونها رو صاف نفهم اما در روایات ما تمثب شده باشه به اطلاق الان تو زهن من نیست. که به اطلاق آیه با آنوان ما تستغذر و نقود الان تو زهن من نیست نفت می بکن این که ما کن اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه اولا این که مراد احمال باشه <تصفيق> که مرام اصطال احتمالی دادن خب احتمالش هست به قدران یک بار استعمال دیگه این آیه لیکن ظاهرم مطلقه یوهل الله همون طیبا و یوهر ما علیه همون خواهز وقتی یوهل الله همون طیبا در حقیقت میشه اگه وقتی به زبان گفت که ایام جامعه مقدماتی صحبت کنیم این امیشا نیست این اخباره بهذا این اطلاق نداره این انش در تورا که امیشای جعل نشده هلید یه جدون همون مخصوباً این هم به تورا لذا به ذهن ما میاد این جور آیاتی رو هم که در کتب فقر بایی بشته هم از میشه این هم خالی از اشتار و شبه نیست. قسم چهارا آیاتی هستن که تقریبا می‌تونیم ما از اونها تعبیر به مناسب زمان خود مثل قانون اساسی بکنیم. یعنی این آیات هم شعارگونه نیست. اما نازره به یه جهل کلیه مثل احلا الله و حرام ربا ناظر به این نیست کل افراد به افراد مشکوک اون حریت پیدا کردن ناظر به اصل تشریع خاصه مثل ف فواتو هنده چی آی مبارکه بولا فاحمال اجروا معنی و عن حملهم به اگر ما باشیم و آیه آی مبارکه باز هم به اخلاق مگر روایت بیاد باز هم به اخلاق آیه میشه متناسب بکنیم مثلا فرض بکنید که در جایی اده وفات با اده با, با زن حامل جمع بشه مثلا زن حامل حامله و شوهرش فوت بکنه خب اده وفات چهار ماه ده روزه و اولا سال احمال اجلا برده ورده همده فرضا اگه ورده همد ماه دیگه تمام میشه. اگر اده وفات بشه چهار ماه در عکسش عکسش مثلا میذنه که دو روز بعد زایید، آیا از خارج میشه یا با چهار ماه روز؟ دقت بکنید. بگیم با اولات الاحمال اجلهم ان يضعن حمله، این اطلاق داره. چه میخواد این اولات الاحمال به اصطلاح عده طلاق باشه، چه میخواد عده وفات باشه. این آیات ناظر به این نیستند. مثلا ناظر به این اطلاق به این جهات ما اینه یا در همین از که موهن من خود سوری طلا و بلا سوار موهن و فعال ف... ف... فعال اردن لکن فعال اردن اجوره اگر زنها شیر دادن بچه رو اجور اونها رو بدین این ما در موارد مختلف به شمسته رو کنیم مثلا اگر زن تغاظای اجرتی کرد گفت من بچه رو شیر میگم ده میلیون تو من روزی میگیرم خب ممکن از این بچه رو به یک دایه یا مثلا پرست خونه پرستاری بیارن شیر خوش بشدن با روزی پرست کنیم رو مثلا ده هزار تونه بگیم آیه مبارکه اطلاق داره که شما باید اجرت مادر رو بدین و رو خیلی گران تقاضا بکنه به ذهب میاد که این آیه ناظر به اطلاق میتازنن این ظاهرا این آیات ناظر رو بینه که شیر دادن مکنه نیست شیر دادن دوز دو دو کارهای مجانی زنی چو چون هست ولوارد ها جوزه ام اولاده هم نحبه یه بحثی هست که اگر تکلیفی آمد این بحث تو بحث اخوی بر در باز مثلا ده. اگر جایی تکلیف آمد خود تکلیف معناش اینه که مجانی باشه بحثم لذا گفتم خود وجوبی چه معناش اینکه مجانی باشه اصلا وجوب که مثلا خاضی شدن واجبه معناش اینکه مجانی. این وجوهی برای ذکر شده 6-7 شده که اصلا وجوه ولوالدات یر ذهنه چون خود ورهان فهمده یر ذهنه پس باید مجانی باشه ولوالدات یر ذهنه آیه در سوی طلاب آمد فه نرغن لکن و نه ارزا بر آنها واجب هست حتی ارزا که میتونن تغاضای پول هم بکنن لازه نیز مجانی باشه فه آتوهن و اما این اطلاق داشته باشه که فاعتوهن اوجوره ما وزو ده میلیون بخواهد که ما مثلا با خمیزات و حدشون بخشت رو بقید این فاعتوهن اوجوره هون آیا اطلاق داره؟ شامل تمام موارد میشه؟ یا نه این آیه فقط نازره در این حده که اصولا اخذ اجرت برای ارزا مشروعه؟ بقید اخذ اجرت برای شیردادن برای مادر مادر خود بچه است این مشروعه اما این بگیم اطلاق داره بخواد به اطلاقش تمسح بکنیم یعنی ما هر اون اینه نه مثل ازده از اهلس کنه به اطلاق تمسح کنیم نه مثل اخواریو بگیم اطلاق رو بندادیم زواره کتاب بگیم همونی که عرف میفهمه، فهمه عرف میفهمه، می به همون تمسح بکنیم نه این طرف قصه رو بگیریم نه اون طرف قصه حد و همینه این فهم دقیق ق قرآن مؤکد عنه که زادن بر مادر رو وقال که لباشیل اول باید مجانی بده. شیر دادن برای مادر مجانی نیست. دقت بکنید. شیر دادن یعنی اینا بیشتر ناظر ببینید مثلا شیر دادن مجانی نیست. میتونه مطالبه اجرت بکنه. هر خوب یا باشه حالا بگیم اصلا نمیفهمید که اخباریان میگن هم درست نیست. اطلاق هم به تأسف بکنید به نظر ما این آیات هم به نظر ما اطلاق نداره الان یعنی چند دفعه عرض کردم رو وجود وجوه اكو ویدیو خونده ال مراکز از اخباری از اهل سنت، از اخبار اهل سنت توسل کردم به اطلاق آیه گفتن دست قبل از صورت میشه که صورت قبل از صح نمی کنه، چون واو داره که بر تفصیل می بحث ما اینه که این آیه ناظر این جهت نیست یعنی آیه اطلاق نداره ما بحث اطلاق و تغییر رست عام و خاص رو متعرض شده گفتیم ما دو تا اطلاق داریم یک اطلاق لغوی داریم یک اطلاق قانونی خوب قصد دو تا آم داریم یک آم لغوی داریم یک آم قانونی ما یک تا رو باید پرداریم آم قانونی ظابطش اینه یک قاعده کلیه جرد شده باشه به خاطر اینکه موارد شک رو برداره ناظر باشه به بج... چه این خارو بسیار ارزانه دکم فاطوها ها دکا، نوجو را این اصلا ناظر به موارد شک نیست. گرچه تو شکی اگر ناظر به موارد شک بود و شک بردگی میشه اطلاق میشه که او، او فوبل اگر اشخالی در او فوبل ابد هست، این باز به این ناظر است، به این که هر کلما یوسما آبدن، این و پایش کل است. کلما یوسما آبدن. پس ما اگر گفتیم زارنال علماء، ممکن است بگیم این ل اینجا عموم مراد نیست. چیز ارخیس عموم ارخیس؟ باید مثلا بگیم فلانی هم که از علماء است، اصلاً پیرمردی بیرون نیاز می‌باشد. مثال، این هم آمده دنیم یا نه؟ بگیم زارنال علماء ناظر است این که همه تا اون موارد هم برداره این ممکن است خاطش بشه بگیم این در نظر خوب ناظر بی معنا نیست مورد شک نازد. ولی چرا انسان در بحث عموم آم، آم و اصولی آن است که وز شده به نحوه آم برای برداشتن شک و در بحثه آم مخواست کردونم متعرض شدیم آیا متعرض هم چه شکی را میشه با آم برداریم این بحثم انجام داریم چه شکی رو میتونیم با آم برداریم مثلا اللهم و ملعن بنی امیت خاطبت تن عامه، اگر شک کردیم که عمر نبدالعزیل که نسان از بنی عاملی هست عمر نبدالعزیل آیا به خاطر بعضی از اعمال خوبش لهم شان چون ما میدونیم مؤمن من اون نمیشه بجوار از بنی عاملی ولی لازه زنا باشه. به خاطر اعمال خوبش آیا مؤمن هست که لهم شاملش نشه یا بعد ما تمسک بکنیم به عموم الله آمد هم بنی عاملیت بگیم شامل عمر نبدالعزیل میشه پس عمر بن عبدالعزیز مؤمن نیست خوب دقیق ما این رو با اللهم الانبنی عمرت قاطبتان بر نمیداریم خوب دقیق بکنیم این رو نمیتونیم با اللهم الانبنی عمرت قاطبتان اسواس بکنیم و لذا احس کردیم هم عام هم مطلق این نکته رو دارن و باید ببینیم چی شکی رو میخواییم برداریم پس بنابراین مثل فخص رو رو جو جوح کن و ایدیه کن مرافق این اطلاق نداره نه بیاییم مثل آیوم اخباری ها اصرار بکن که اصلا زهور نداره نه مثل اونها اطلاق بیر فهم درستی انجام بدیم مثلا اخباری ها که از مشاق طبعا مشترات زیاده در فرط شیعه که داره مثلا فرصا زن از زمین زن هم در اینجا مراد همسر آنها دختر و مادر و اینها خب اینا میگن مخالف با اطلاق کتابه خب اگر که در حل این عروسه ازدواجمون باعث آماز ما که کتاب تحریق میشه. رواج تا ما از آخر همون یک ده در داریم در این ارث که ازش این روایت تحریق میشه. خب این راه. این راه متعارف و ما. یه راه دیگه از احباریای ما رفتن و حاصلش اینه که نشه اصلا زواره کتاب خود نیست اینکه زن باز ازش شنگل روشی زواره کوچک. رواج هم من ما رو چی میذاره کتاب مرا جنی. کوینا رای سبون ما ممکن است که آیاتی که ناظر به ارث زنه به خلاف آیاتی که ناظر به ارث بچه ارث ارس که اگه امر متعارفی در تاریخ بشر مثلا در خود عرب جاهلی، در عبدی زیادشون اصلا زن خودش جزبه ترکه بوده نه جزبه مرسه یعنی من که میوکرم زنیشم ارسی داده به پسرش از غیر خودش یعنی به پسر شوهرش اصلا زن جزوه ترکه بوده تقسیم می شده به عنوان مال بهش نگاه می کرده خودش جزوه ترکه احساب می شده لذا مثلا ممکن است دیگیم آیاتی که در حصه زنه در حقیقت نا... از قبیل امر واقع در مواقع توخم حضره یعنی این آیات اصلا اطلاق ندارن کالا حالا که به روایات یعنی به عبارت این یک ذهنیت خارجی در اونجا حاکم بوده چون عرض اصولا در زندگی بشر به عنوان این که انسان استنگار وجودی انسان هم دیگه پدر که میره و خونه به بچه ها میره. طبیعت همسر به لذا هستم دختر و مادر نه طبیعت همسر این هست که اون که داره شوهر بکنه این خانه به طبیعه یعنی این جد اجتماعی رو بخوام میدوند من از اون که آدم وقتی اون موهیت رو می‌بینه کاملاً برش واضحه که آیات ارث زوجه اصلاً اخلاق نداره که بریم بحثا رو مطرح بکنیم. توی بعضی هم داره که زن ازدواج می‌کنه افراد غریبه و نا حتی می‌تونه داره با دشمن مثلا شوهرش هم ازدواج بکنه. و اون شخص میاد چون شوهر زنه دیگه میاد تو خونه مسلط میشه. تو اون زمینی که هست مسلط میشه. پس اول اگر برطرف روایات آمد یه راه دیگه شم اینه. نبگیم، نبگیم با هم اینه نگیم به آیات کتاب تمثب نگیم تمثب کنیم فهم صحیح رو ارائه میگیم بگیم راجع به خصوص ارت زن چون یک مشکلات اجتماعی بوده یه واقعیت اجتماعی بوده یک سابقه تاریخی بوده این ارت بردن زن فی اون اطلاق مثل فرزند رو نداره که در تمام ادیان بوده در تمام شرایط ادیان و فرهنگ ها بوده شاید فرهنگ نادری باشه شخص نمید دولت بیاد رو بگیره ویده شخص وقتی نمید بچه محطان خوچیت بودن تو همون کنون زندگی زندگی بگردن تو همون اوضاع ادامه میدادن خصوص مسئله همسر چون ممکن بوده بعد از انقضای شوهر بیاره، شوهر بیاد تو زندگی اینا داخل بشه و بعدش هم اینا محسوسا وقتی که همسریست که مادر این بچه نیست. ارتباطی باش نداره. حالا شما مثلا میگید ممکنه دخترشم ازدواج بکنه شوهر بیاره اونم بیاد تو سرنید اما به هر حال چون این شوهر از راه دختره اون یعنی منت اساسا مال دختره شوهر نیمتون قد دستش باز باشه و به دختر با برادرش رابطه داره مادرشون مثلا مادر خود شخص یعنی مادر مهیه حتی اگر ازدواج بکنه شوهر او بیاد به عنوان تاون جد بچه ها حساب میشه مع که اون مادر هست و مالک اصلی اونه خواهی نخواهی تصرفات محدودتر میشه به خلاف اینکه شوهر بیاد زن هم اگه فرسیم اصلا مادر این بچه نباشه کل مادر نه زن با اینها رابطه داره نه شوهر جدید یعنی وقتی انسان صحنه اجتماعی و واقعیت اجتماعی رو میبینه میفهمه این مسئله مسئله عجیب و غریبی نیست که خیال میکنی. و لذا در خود کتب اهل سنت هم داره خیلی هم عجیبه که عبدالملک بن مروان مثل با قول ما یک آییننامه داشت، یک پرونده هایی داشت، قضاوت هایی داشت و احکامی داشت. یکی از احکامی که خود عبدالملک بن مروان داشت و نوشه شده او در خاندان بنی امیه نگهداری میشد، این که زن از زمین ارث نمی برد. اینام خیلی در شام که ما احتمال دادیم از کوفه از امیرالمومنین از اساسا از اهل گرفته باشه. ایده اثر عبدالملک بن مروان شما خیلی حدیثه مثلا که حجاج که از والیای اون حجاجه چه دیگه تفا در بین خود بنی امیه و خیلی در بین مسو پاشون جزء فرد فوق 16 ساله حتی امام باقر به دنیا نیامده بودن والی مدینه شد عمر بن 16 ساله و قبل از این سن اصلا دعوه‌تون و با کعبطره حرم بهش گفتن علاوه بر 16 سالگی که این قصه ما هر وقت بگم واری شد آن بوسیدن و الله فراق بنیر ببین خالص البته میگه یک فوق العاده است و این اولین سکه که در دنیای اسلام زده شد چون تا اون زمان تا سال 703 سکه هایی که بود یا مال روم بود با سکه روم بود پول یا مال ایران بود اصلا پول اسلامی وجود نداشت اولین کسی که پول اسلامی رو ایجاد کرد همین عبدالملک بن باز عجایب لطف الهی های سال 73 هنوز موجوده سکه های سال 73 قنری هنوز در موزه ها موجوده من عکس بعضیشون 73 و 74 یعنی سکه های اولیه‌ای که زده شده خیلی آرکایو هنوز الهی مون هاله اون سکه ها در بعضی از موزه ها موجوده قرار اینکه این مطلب خیلی تعجب آور نیست یعنی اینطور نیست حالا مخاطب این مطلب خیلی عجیبه من وارد اون بحث فقیلن. پس یک قسم چهارم هم داریم که اینها اطلاق برایشون منعبضه میشه بیشتر جمعه ناظر به اصل تشتری دارن ما از اینها با یه تعدد میکنیم به قانون اساسی آن اولا میگن ناظر به اصل تشتری گاییم یه اینها هستن نه مجمن سبیر احمال و اجمال رو هم ما در برآن بکنیم قسم پنجم آیات کمی هستن که میشه به اطلاقاتش تمسک کرد اطلاق قانونی مثلا در بابا آیات دیات تمام آیاتی که در دیه وارد شده یک میشون مغیب نیز محدد نشده منشه همینم بوده که بعضی از علمای اهل سنت شد به دو نفر نسبت داده شده من دیگه نهیدم دیه زن و مرد گفتن یکیه چون در قرآن دیه از اون اصلا تعبیر در قرآن هیچ نیابده که چه مقداری باشه زن و مرد یک آیه هم که در باب دیه به اصطلاح با اهل میثاق پیغمبر و و با با من دین اصلا میثاق یعنی قرارداد داشتن باشه اونجا هم دیه شده البته در اهل ذمه نیامده در غیر اهل ذمه ل... برای اطلاق عرفی نمیفهمم چه جوری و شاید اطلاق عرفی نمیفهمم قانونیشونه کاری اطلاق عرفی هم نذرا اینو ناظر به اصل دیه هست اینا به همون که میگن قانون فیما برد معیم میکنه پیغمبر در مقام جل دیه کفار رو یک هشتم یا یک دقونه دیه مسلمان قرار اما البته اقوال در دیه مختلف میخوان وارده بحث بشم الاخره. یک طائفه ای از آیات مبارکه از این مقدارش انصافا کمه ما چیه بحثه کلاب هم بعضی از آیاتش رو بعضی از آیات هستن که خیلی ریزکاری ها رو دارن این آیاتی که ریزه کاری ها رو دارن شاید بشه به اطلاق کن کرد. کن اصلش ثابتی اینه اصل سبوت دیه هست برای کافر در مقابل کی؟ در مقابل مثل ابن هست اینگه از کافر دیه نداره با اصلا میگه کافر دیه نداره اصل دیه ثابته اما تصاوید هم از هر سنت نیست گفتن سلسن گفتن عشرن گفته شده او شما داریم یا یک دوازده ها. یک روی بله اینم گفته شد الانی که آخان چون نمیخوام واضح بحثایی که پیشن داریم در مجموع آیاتی که میشه از باب طلاق داریم یه در از آیات در باب طلاق میشه به خصوصیات بعضی از خصوصیات اونها تنصف کرد. این انصاف هم نه نه دقیق میکنی میتوانستیم یعنی قابلیت بود چون اونا اصلا میگن ما به این روایت مراجعه نمیکنیم چون خلاف قرآنه این بحث سر اینه ما میخوایم بگیم این آیات ناظر به این نیستن طبعا اگر نداشتیم میگو همه معارضیه یکیه دقیق میفرم ها بحث سریعه اینه چون اونا اطلاق داره روایت معارضه با کتابه این بحث سریعه این هم راجع به این قصد که انشاءالله دیگه پس آیاتی رو که مجموعاً الان در طرف آمده انصافاً مختلفه اقسام مختلفه بعضی شما می در طرف هم اصطور کنیم بعضی هاش شئی الله و آنه و آنه این بحث بگیر بحث دیگری که هست راجع به حجیت بول لغویز که به احترام مرموم استاد ایشون بعد از حجیت زواهر بحث حجیت قول غریب آورده در این جلد نسبهای اصول شوری که تصریح 47 بحث ثانی رو ایشون دادن در حجیت قول غریب بعد از حجیت ذواهد بعد ایشون بعد از مقدمه میشه ای آیا برای معرفت ظهور ده اهل لغت مراجعه میشه یا نه ایشون وجوه رو ذکر کردن من سریع میخونم فقط برای بعضی از نکات به الله های مراجعه کنم یکی اینکه اهل لغت اهل خبره و رجوع به اهل خبره با به عنوان به استلج امر عرفی ایشون دو تا اشکال کردن بله یکی اینکه اهل خبره اهل خبره نیستن بله چون اهل خبره که ما بهشون رجوع می کنیم به در امور حسیه مثل ساختمان مهندسی ساختمان اینا اما امور حسی دیگه به اهل خبره بیات نداره و این مسئله حسیه که آیا عرب این معنا رو به کار رو یک اشکال یک اشکال دیگه اینکه الا تقدیری که باید انتصال میکنن اهل لغوی اهل خبره باشه بازم درست نیست روش چون این کتب لغت نهرش برای این بوده بیان استعمال نه برای بیان موضوع. بعد دعوای وجه دوم بگه بقیه کلمات ها آمینه وجه دوم ایشان دعوای اجماع برای خجیهت اهل لغت رفیحه اولاً ان الاجماع القولی ذی رو متحققه اینکه ادعای اجماع شده باشه نید. چون خیلی از هستم که چه ادعای مصطفی شیعه طوسی ننمیشه که ذی‌المراد می می ایشون میینه اگر اجماع ان باشه اجماع تعبدی نیست که کاشف از قول معصوم باشه حالا اون اونایی که ادعای اجماع کرده ادای اجماع با خلفا ادعای متعبدین متشرعه فکر نمی‌کنم کسانی که ادعای اجماع در اینجا کردن مرادشون همین اجماع مصالح اصولی ما باشه شیخ مریم اگر ادای اجماع کرده یعنی متوارق از در کتب تفسیر و وقتی آدم همه کتب کسانی که تاریخ نوشن که هر کسی به کتب و لغت مراجعه میکنه کسانی که یک شعر زبان عربی معنا هم به کتاب به کتب, به کتب و لغت مراد اجماع ایشونی یک دو اشکار کرده و مرادم اجماع قولی نیست شما هر کسی نگاه میکنید از تاریخ نوشته شعر نوشته ادبیات نوشته فرسانت ها کتب تقبی نوشتن یه لحظه که نعم یه این کتاب این معنی در کتاب و فلان این رو در کتاب فلان این اجماع مورد این از دنبال این من خیلی اجمارم ارزیمم چون خیلی به نظر ما وجه ضعیفه خیلی توضیح نمیدن خدای نکرده تحانتی به کلماتیشان بشه وجه سوم جریان انصداد سقیره بله جریان انصداد سقیر اصطلاحاً من داخل عقد میشه که نمیذارم از زمان شیخ انسائی اومده لغت و شیخ من که یک انسداد کلی در احکام داریم یک انسداد سای در خصوص موارد لغت حتی اموسیدان طیبا که اگر ما بنا بشه در موارد لغت به کتب لغت مراجعه نکنی علم اممی نداریم تاسیس فقه جدید لازم میاد خلاص همون بحث اما در خصوص اهل لغت. بعد ایشون جواب دادن که انصداد باب در لغت می مولا اثر طب و علیه السلام با انفتاح باب در احکام وجهی نیست برای لغت بعدم فرضون که بعض ال اعاظم التزم به حجر قول قوی انصداد رو به تقریب دیگر و خلاصه اون تقریب این است که عدم جواز رجوع به براءت اند انسداد باب العلم یکی لزوم خروج از دین یکی هم لزوم مخالفت قطعیه بله و راجعه به لغت اگر ما مراجعه نکنیم خروج از دین لازم نمیاد به کتاب لغت لیکن مخالفت قطعیه لازم نمیاد این خلاصه بنظر این حرف مال آغازی ها باشد به هر حال حرف ها خیلی نیست خیلی خودمون رو وقتون رو تلفه برای این حرف ها و فی ها اولا آی خوی اشکال فرمان بیشون که لا نونسلل روزو من مخالفت قطعیه خیلی زیاد نیست و ما موارد داریم که شرط ذریب در معنای لغویش وقتی به رجوع نشون کمه احتیاط میکنیم یکی از مقدمات انصدار منحصر نیست به خاطر به عدم جواز رجوع بلکه از جمله مقدمات انصدار امکان اقتدار همگی جای من منم بودن خلاصه شونی که شما نمیتونین بگین اگر ما به لغت مراجعه نکنیم برائت داریم میتونه مشکل باشه مخالف یا مخالفت قطعیه یا خو جزمین بلکه هو احتیاط میکنیم. چون موارد زیاد میشه احتیاط میکنیم اجواز کردن کار خراب نمینه بعد آی خویی در آخر کلامشون دیگه می متن مطنع اوازیشون رو می کنیم فتح سلم مادکرنا لا دیل قول لغوی به در اعتبار ادارت و تعدد یعنی قول لغویشون شونجزو موضوعات است و حسی هم هست حسی نیست پس به بقیه موضوعات خارجی هم ادارت باز باشه هم تعدد دو نفر باشه این هم با نفهم دیم احتمال میدم مال اون دوره های مثلا سوم چهارم هم اینو مثلا همینجوری فردا گفت. خیلی عجیب این کلاما چون این کلام اولا خب ما با هم مراد ایشون به این دو قضیه که شیعه باشه و عادل باشه اصلا سرغ نداریم چون با تعدد هم دوتا باشن هر جا شیعه باشن و عادل هم باشن چون تعدد برابری است من احتمال میدم وقتی میگفتن که کلام دیگران رو والله قطعاً معنای ایشون این است که در با موضوعات خارجی به خبر واحد سقه کافی است نه علالت معتبره نه تعدادی جزا مبناه خطیهی ایشانه دیگه در کتابه زیاد آمده جزا مسلم و نظام محروف است موضوعات خارجی احتیاج به تعداد داره الا ماخردی به دلیل ایشون می کنند موضوعات خارجی با واحد هم ثابت میشه بسه محروف ایست آیا موضوعات خارجی اصل اولی در موضوعات خارجی تعداد باید باشه دو نکنه باشن یا اصل اولی یک نفر کافیست الا ما خرجه یک نفر کافیه من فکر نیکنم این تحسله رو شاید خود مخرر نویشه و الله قطعا مبدوم آقا یا مثلا مال چه سال قبل آقا که جاری شده جریانت المقام و قطعا با این مقدماتی که ایشون قرار دادن و علم بلغت را از منظوعات حسی قرار دادن منظوعات خارجی؟ کتابان ایشون در موضوعات خارجی خبر واحد استقلاب حجت میدونن این قطعیه اینکه تو حالا شراره خود بنده در در توضیحاتش میدیدم در همه کتابهای ایشون هم هست و خیلی هم چون تعجب کردم خوندن عباراته احتمالاً میگم مقرر اضافه کرده مضافاً که اگر این مطلب بیاد یعنی معناش ادم موجود قلبی دارید پیداکردن تعدد دو تا قادر در لغت واسه این لغوی معروفه که هستند شیعه نیستن حالا منظور ظاهره مثلا شیعه هست. آروم تورهی، می‌کن فو عاده در کتاب ضعیفه، کتاب ضعیفی کتاب دهنه برهمی. این ارزش علمی در این کتاب، کتاب مجموعه برهمی. اگر کسی می‌خواد حشوی ذهنی پیدا کنه و این کتاب مراجعه. این ارزش علمی نه، می‌کن با تعداد، مگه این کشور مثلاً خلیلو هم چون خلیلو مسویشون شیعه است، در کوفه بوده، عالم کوفه شیعه. مگه مثلاً به خلیلو، به گذشته نخواهد یه که شیعه با. با. بگیم ایشان. به این دو نفر مثلا مراجعه به الله با مثلا حال یکی پیدا بکنیم که مثلا ادالتشم بازمون شلافه منش یه عبوده دیمید با ثابت بشه عادله باز و دو تا پیدا بکن. این من یقین دارم که این مطلب اشتباه حالا اشتباه کجا منشه من نمیتونم دهن ع اصولاً مبنای ایشان چون تحلیلی است جزء امور حسی قرار از خارجی مبنای ایشان قطعاً در امور حسی خارجی خبر ثقه واحدم حجته ادالتاً شرط نیست، ادالتاً شرط نیست. مبنای ایشان اینه در نظر بگیرید و نظاماً هم از اباظتون گفتن که خیلی ابهام داره. راجع به حجته قول مختصری فرض صحبت می‌کنیم بعد وارد بحث حجته